اسب همان نزدیکی بود سفید و براق که هر چه هوا تاریکتر میشد، سفیدی پوستش بیشتر به چشم می‌آمد. ملا رفت افسارش را گرفت و آورد و نزدیک سکوی سنگی پای دیوار سرانه نگاه داشت. خورجین را پهن کرد پشت اسب عقب زین. اول خودش سوار شد و به اسماعیل گفت برو روی سکو و سوار شو. اسماعیل همین کار را کرد. سوار شد و پشت ملا نشست. اسب تکان خورد و پا به پا کرد. گویا میخواست وزن سوار تازه‌اش را ارزیابی کند. راحت نشستی؟ بله آژوقا راحتم. ملا اسب را به طرف جاده راند. باران همچنان میبارید خاک رس اطراف کاروانسرا شل شده بود و پای اسب در آن فرو میرفت اما جاده سفت و شنی بود. اسب به راحتی یورت نمی‌تاخت. باران همگام با گام‌های اسب سفید شوره کرد. باد قطره‌های درشت آن را به هر طرف که می‌خواست می‌پراکند. بیشتر از روبرو میآورد و میکوبید به سر و ریش سفید ملا که راست نشسته بود روی زین و به ابرو نمی آورد لباسش خیس شده بود از حاشیه امامه و شانهایش آب میچگید اما اسمایل در پناه ملا بود باران کمتر به او میبارید برای همین ناراحت بود ملا پرسید من اسم شما رو نمیدونم بنده اسمایل سنوری آقای اسمایل می میبینی نعمت خدا رو چند روز دیگه این سرزمین مثل مخمل سبز میشه بله آج آقا، ولی شما هم حسابی خیس شدین خیس شدن یا نشدن من مهم نیست مهم اینه خدای رحمان در چنین ساعتی به باران امر فرموده بر این نقطه از زمین بباره مهم اینه اسمائیل از بارش شلاقی باران و حیاهوی باد استفاده کرد و به خود جرأت داد و پرسید میبخشید این سؤال میپرسم شما از کجا به بنفشه در تشریف آوردین از ارومیه، البته از اطراف اون این اسم برای اسماعیل آشنا نبود تا به حالان را نشنیده بود خواست این بار هم نشنیده بگیرد و بگذرد اما نگذشت حاجقا اقا عذر میخوام ارومیه کدوم طرف کشور میشه؟ صدای خنده ملا همراه با شرشل باران شنیده شد حق داری بپرسی. برای اینکه نامونشون ارومیه رو از رو نقشه ها پاک کردن و اسمش رو گذاشتن رضاییه. رضائیه یادش آمد اما شک داشت. همین رضائیه دیگه آذربایجان غربی؟ بله بله از همونجا منو پارک کردن اینجا. میخواست دلیلش را بداند که ستون نوری از پشت سر تابید و سایه ی آنها را از جلو رویشان روی جاده پهن کرد. آزرخش ناگهان از پشت جهید اما نور تداوم داشت. کارا نمی نمیتوانست باشد برگشت و به عقب نگاه کرد از پشت پرده امواج باران نور یک جفت چراغ ماشین را تشخیص داد که میآمد هاجاقو پشت سرمون ماشین میاد متوجه شدم بیاد چند دقیقه بعد صدای موتور ماشین هم شنیده شد راننده برایشان بوغ زد ملا چرخاند و به عقب نگاه کرد و زیر لب گفت بفرمایین. اسب را به حاشیه جاد بکشند. دیگر اسب یورتمه نمیرفت آهسته روی شانه گلالود جاده حرکت میکرد. راه برای ماشین باز شده بود. گویا راننده قصد عبور نداشت. ماشین به طرف آنها میآد. ملا افسر اسب را به سمت دیگر جاده کشید. حیوان به نرمی آن رفت و از میان بوتهای خار و های درشت سنگ حرکت کرد. ماشین در اینجا هم پشت سر آنها قرار گرفت. این بار فاصله را خیلی نزدیک تر کرد. اسمایل برگشت و نگاه کرد. جیب بود. در سرما بخار از اطراف چراغهایش بلند میشد. سرنشین یا سرنشینانش دیده نمیشدند. ملا اسب را کشید به باریکه شانه جاده و کمی سرعتش را زیاد کرد و گفت نخیر، خیر مثل اینکه آقای راننده شوخیش گرفته اسمایل که خطر را بیشتر احساس میکرد گفت حاجی به نظرم هیچم شوخی نداره میخواد اسب رو رم بده ببین سپرش نزدیک برسه به دوم حیوان در همین موقع بوغ ماشین هم به صدا درآمد، مقطع، پی در پی آزار دهنده. اسب سرش را بالا گرفت و یالف شند. ملا آرامش کرد و به اسماعیل گفت: "محکم بچس، محکم." ناگهان اسب از جا کنده شد، گویا پاهایش در زمین نبود و پرواز کرد. اسماعیل چند بار به هوا بلند شد و دوباره روی خورجین فرود آمد. تعادلش به هم خورد، با این حال با هر دو دست کمر ملا را چسبید و محکم بر پشت اسب نشست. خیلی زود از ماشین فاصله گرفتند طوری که نور هایش به زحمت به آنها می رسید با سرعت گرفتن اسب به نظر سرعت باران هم بیشتر شده بود شلاق کش می به سر و کولشان ماشین هم سرعتش را زیاد کرد و مدتی بعد خودش را به آنها رساند. دوباره نور ها سایه اسبی را که دو نفر سوارش بودند روی جده انداخت پاهای اسب بلند بود و سرایالش در سایه سرنشینانش گم راننده دو پای عقب اسب را نشانه رفته بود و میخواست سپر ماشین را به آنها بزند. ملا اسب را به شانه چپ جاده کشید. ماشین در پیش آمد. وقتی نزدیک شد اسب به شانه راست کشنده شد. پس از هر جا به جایی میانشان فاصله میافتاد و راننده را ناگزیر میکرد ناگهان سرعت ماشین را بالا ببرد. اسب با نشات میتاخت سرعتش بیشتر شده بود. راننده گیجتر شده بود. ماشین را چپ و راست میپیچاند و محکم گاز میداد. ملا خم شد دست به گردن اسب کشید ماشاءالله موتور ماشین زوزه میکشید و به زحمت پیش می جاده نایهان به چپ پیچ خورد اسب با همان سرعت روی شانه راست جاده تاخت اما راننده نتوانست ماشین را کف جاده براند در پی اسب به راست راند ولی جاده یک باره به چپ گریخت و راننده نتوانست آن را پی بگیرد از شانه راست فرو افتاد داخل مزرعه گندم اندکی بعد واژگون شد و موتور آن از کار افتاد. ملا سرعت اسب را گرفت و دور زد و برگشت بالای سر ماشین که حالا مثل اسباب بازی یکوری افتاده بود و چرخهایش هنوز چرخ چرخ می زدند. و نور چراغش زمین گلالود مزرعهی گندم را ناامیدانه روشن کرده بود. ملا گفت: شو ببینم چی به سر راننده اومده. اسماعیل از پشت اسب سرخورد و آمد پایین. نرمه هر دورانش کوبیده شده بود. میلنگید و درد میکرد اما ملا راحت آمد پایین در جیب را باز کرد و توی اتاقک را نگاه کرد اسمایل هم سرک کشید و برسید شناختین؟ بله سرکار و سوار هستن رئیس محترم پاسکا او تلاش میکرد تا خود را از تنگه میان قربالک فرمان و صندلی خلاص کند و بیرون بیاید اما شکم تپلی کردش از تنگه نمی گذشت. گیر کرده بود آنجا ملا خم شد و دستش را دراز کرد. سرکار بی زحمت دستتو بده به من تا کمکت کنم او سوار با صدایی لرزان و کینجو جوابش را داد نیازی نیست خودم میتونم اما نمیتوانست مولا گفت اگه مایل نیستیم من کمکتون کنم اجازه بدین این جوون دستتون رو بگیره تا اجالتا از این شرایط خلاص بشین سپس به اسمایل اشاره کرد او دستش را پیش برد او سوار با بیمیلی دستش را گذاشت توی دست اسمایل گرفت و کشید قربالک جیر جیر صدا داد و مقداری چرخید و بالاخره استوار رها شد و با زحمت از ماشین بیرون آمد لباسش برخلاف آند و خوش بود اولین کارش مرتب کردن آنها بود اما قطرات باران بی ملاحظه بر سرکولش میریخت و خیسش میکرد می با این حال زود اوضاع مسلط شد و به جیپ واژگون شدهش نگاه کرد ملا با مهربانی پرسید جناب استوار سالمید که ایشالله استوار جوابش را داد چیزی نبود؟ میخواید اصبا بدم خدمتتون تا برگردین؟ نیازی نیست خودم برمیگردم پاسکا شما هم سرتون سرتونو پایین و برین اگه بشنوم در این مورد حرفی زدین اون وقت من میدونم و شما ملا گفت سرکار استوار اختلافات ما به کنار اما امکان نداره من بزنم شما زیر این بارون پیاده بمونیم اون وقت ما هم کنار شما تا صبح میمونیم راه ما نزدیکه بدون تارف و منت اسب و سوار بشین و بریم تا خیال ما راحت بشه استوار چند بار پا به پا شد به اسب نگاه کرد و به لباس خیص خودش و گفت من همیشه اسب شما رو تعریف کردم در طول خدمتم اسبی به این خوبی ندیدم خیلی ممنونم استوار این بار نگاهی به جیپ خود انداخت که به پهلو افتاده بود زمین و چهارچرخش روی هوا بود اگه بخوام اسب و ببرم چطور برگردونم عجله ای نیست، بن میگردونیم. به اسب نگاه کرد که در چند قدمی آنها ایستاده بود و انگار از بارش باران لذت میبرد. سرخان سپردام ای خواستی اسب و بفروشی، من اولین خریدارشم. خیال فروش ندارم. این اسب نباشه نمیتونم هر روز بیام پاسکو و دفتر حضور و غیاب امضا کنم. فکر امضای دفتر نباش. سرباز میفرستم دفتر رو بیاره بنفشه در امضاش کنی. ملا با نرمه انگشتش قطرات آبی را که بر پیشانیش بود گرفت و گفت: مرحمت زیاد. من دیگه به این رفت و آمد عادت کردم. بعد رو به اسماعیل کرد و گفت: لطفا اون اسب و بیار اینجا سرکار استوار سوار بشه. اسب در شیب جاده ایستاده بود و گاهی سرش را به شدت تکان میداد تا آب باران از روی یال های بلندش به اطراف بپاشد. اسماعیل افسارش را گرفت. اسب سر و گردن با را بالا برد و در پرههای بینی‌اش باد انداخت. با این حال به پشت سر اسماییل آمد ملا افسار اسب را به رئیس پاسگاه داد حالا بفرمایید سوار بشین استوار افسار را گرفت و با شگفتی به اسب نگاه کرد. گویا شرایط ناگوار خود را از یاد برده بود اسب سم بر زمین میزد و گردن میافراشت باران همچنان میبارید استوار پرسید از چه نژادیه از نژاد اسیله استوار احتمالاً بیان که معنی حرف ملا را بفهمد سرش را چند بار به تایید تکان داد و مثل کسی که واگویه کند گفت به اینجا که رسیدم دو آرزو بیشتر ندارم یکی داشتن همچین اسوی و اون یکی دیگه چیزی نمیخوام با قطره های باران را پیچاند و به سر و صورت آنها زد ملا خندید و گفت سرکار استوار فعلا این یکی رو سوار بشین شاید دومی هم قسمتتون شد شما آقا ملا آدم آدمو شرمنده میکنین ای کاش شلوکاری نمی کردین و دولت مجبور نمی شود کنه. اون وقت خیلی به ما خوش میگذشت. حالا هم خوش میگذره. نه منظورم اینه که با هم دوست می شدیم. ما یه حالا نیستیم سرکر استوار. هستیم دیگه. لطفا سوار بشین و تشریف ببرین تا خیالمون راحت بشه. استوار به اصطلاح نزدیک شد. به پهلوی او پیچید. یک پایش را در حلقه رکاب گذاشت و خود را از زمین کند. پیش از آنکه بخواهد روی زین بنشیند اسب حرکت کرد و او را در جاده گلالود پشت سر خود کشاند استوار که با هر دو دست قاچ زین را چسبیده بود ناگزیران را رها کرد و با تعجب گفت این اسب چرا به من رکاب نمیده با اشاره ملا، اسماعیل یک بار دیگر رفت و افسار اسب را گرفت و آورد پیش استوار. ملا گفت باید کاری کنی که اسب به شما اعتماد کنه اسماعیل افسار را نگه داشت استوار با ترس سوار شد و روی زین نشست افسار را به دستش داد وقتی استوار زانههایش را بر پهلوی اسب فشار آورد تا حرکت کند حیوان سرش را پایین آورد و بینیش را تا نزدیک زمین برد و جفتک بلندی انداخت که استوار از روی زین به هوا بلند شد و دوباره افتاد روی آن اسب همچنان می کرد و میخواست سوارش را به زمین بکوبد استوار با دو دست قاچ زین را چسبیده بود و سعی می کرد زمین نخورد اما اسب شروع به تاختن کرد. صدای فریاد و عصبار سوم عصب که بر سنگ و شن جاده حسابت می کرد شنیده شد. اسب مسافتی تاخت و دوباره برگشت. عصبار دیگر از نفس افتاده بود. چنگ انداخته بود به قاچ زین و چسبیده بود به آن. اسب به نوبت روی دو دست و دو پا به هوا می پرید و تعادل سوارش را برهم می زد. گویا بازی می کرد و از آن لذت می برد. ملا به طرفش دوید و بالاخره توانست آرامش کند. نه سرکار استوار، نتونستین رامش کنین، بهتر بیان پایین استوار زبانش بند آمده بود انگار جزی از پیکره ی زین شده بود و از ترس می لرزید. ملا کمکش کرد تا از اسب پیاده شود نمی توانست روی پا بیستد دنبال جای مناسبی میگشت تا بنشیند اما همه جا خیس و یلالود بود ملا زیر بغلش را گرفت و پرسید حالتون چطوره؟ سرتون که گیش نمیره؟ من این اسبو می کشم. با تپانچه یه گلوله میزنم توی مغزش. ببخشین سرکار و استوار حیوون دیگه. یه همچین اسبی رو باید اونقدر تشنه و گرسنه نگه داشت تا دیگه حواس جفتک انداختن نکنه. به قدری علف علفمو فایون دادین که هار شده رو بند نیست. اگه یه خرد شل شده بودم با مغز میگویدم زمین. اما نتونست، حریفم نشد. من بالاخره یه روز سوارش میشم. سرکار، میخوایم من سوار بشم و شما هم ترکم بشینید تا برسونمتون پاسگاه؟ نخیر. الان از تو ماشین بیسیم میزنم پاسکا بیاد دنبالم. شما هم این طرفا پیداتون نشه. آهسته به طرف جیپ رفت. با زحمت توانست گوشی را پیدا کند. کمی بعد خشخش بیسیم شنیده شد. با صدای بلند صحبت می کرد. گفت بر اثر باران و گلالود بودن جاده چپ کرده. نشانی میداد که بیایند. ملا بازوی اسماعیل را گرفت و گفت. حالا دیگه میان سراغش. بریم. اسب وسط جاده ایستاد و گاهی سرش را بلند می کرد و زمانی زمین را بو می کشید. ملا افسارش را گرفت و دست به صورت اسب کشید. زین و خرجین خیس شده بودند. ملا سوار شد. بعد پایش را از حلقه زین در آورد تا اسماعیل هم سوار شود. وقتی نشست اسب به طرف برفش دره به راه افتاد. هنوز صدای استوار که با بیسیم صحبت می کرد به گوش می رسید. باران بند آمده بود. باد میان درختان پیچیده بود و تنین صدایش با خروش رود در هم آمیخته بود ملا و آهسته با هم حرف میزدند نزدیک خانه های خانههای بنفشه دره ها پارس میکردند تایشان هم دوان دوان خود را به آنها رساندند اما وقتی ملا و اسپش را شناختند دیگر ادامه ندادند و بعد از چند پارس کردن خاموش ماندند اسماعیل جلو مسجد پیاده شد میدانست آنها آرام و قرار ندارد صبح با سر و صدا بیدار شد آنا با زن دیگری در حال صحبت بود وقتی گوش داد صدای صفورا را شناخت به آنا میگفت دیر شده الان باید راه میفتادیم میدونم حالا بیا تو اسماعیل خوابیده دیشب خیس و خسته اومد خونه سرمو نخورده باشه خوبه کجا بود مگه نمیدونم فقط گفت با ملا بودم صفورا آهسته گفت دیشب سحرخانم خیلی بیدار نشست منتظر رئیس باسکا بودم و نییمد آه کشید تا آمدن اسماعیل بیدار موندم وقتی رسید آروم شدم حالا بیا تو حاضر شم اسماعیل در این مدت بلند شد و لباسهایش را پوشید و بیرون رفت تا آبی به سر و صورتش بزند صفورا توی راه رو ایستاده بود با دیدن او گفت خوش به حال شما تهرونیا. هر قد که دلتون میخواد میخوابین اسماعیل خندید و سلام داد و گفت تهرونیا نمیخوام بخوابن بیشتر وقتا خواب می‌مونن صفورا دعایش کرد زنده باشی به حیات رفت، آفتاب گوشه دیوار بود، با آن دست صورتش را شست، آب آفتاب سرمایه شب را در جان خود داشت، پوستش را میگزید، وقتی برگشت چند نفر از زنهای همسایه هم با بخچه آمده بودند، با آنها سلام و کرد، آنها با بخچه بزرگتر بیرون آمد و به اون گفت، برات لباس تمیز برداشتم، نون پیچه با پنیرم درست کردم تو راه بخور، دیرمون شده، قفر را داد به سفورا تا او در را ببندد اسمایی سرش را انداخت پایین و آهسته راه افتاد از اینکه تنها مرد جمع بود خجالت میکشید. میدانست که چندین ساعت باید لب فرو ببندد و ساکت بماند و با کسی حرف نزند مگر به ضرورت جلوتر راه افتاد تا اهالی بنفشه در او را همراه زنها نبینند تازه به میدان رسیده بود که سونا را دید با عجله میآمد نفس نفس زنان پرسید هنوز راه نیافتادن اسماعیل سرش را پایین انداخت و گفت نه nah, دارم میان دیگر حرفی نزدند و ساکت از کنار هم گذشتند چند قدم که برداشت احساس کرد سبک شده و مثل گل قاصدک منتظر آمدن است تا او را از زمین بلند کند و در آسمان بچرخاند و به مقصد نامعلوم و شاید هم معلومی ببرد و زمین گیرش کند با همان سبک بالی خانه های ده را پشت سر گذاشت به درخت بید تنهایی که نزدیک جاده بود رسید. رفت و به آن تکه داد. باد افتاده بود میان شاخه های درخت و آنها را میلزاناند. او هم می لرزید. فکر نمیکرد سنا هم سفرش باشد. قفلگیر شده بود و در همان حال بیقرار. قرار. طنا گاو زیور نزدیک درخت بید به زمین می خکوب شده بود. حیوان با اشتها مشغول چریدن چمنهایی بود که هنوز رطوبت شبنم شبانگاهی را بر تن داشتند. کم کم گروه زنها هم از ده بیرون آمدند چهار یا پنج نفر بیشتر نبودند مه صوبگاهی مثل دود آبی رنگ تنور خانه های بنفش در ره روی چمنها و میان درختان شناور بود صبح قشنگی بود با آسمان آبی و صاف و باران و زمینی سیراب و خاک نرم و مرطوب آماده سبلان هم دیده میشد. قله و یالهایش یک دست پوشیده از برف بود پایینتر از میان این دود اجاق چوپانها به صورت خط آبی رنگ کج و تابدار به آسمان قد کشیده بود. مدتی و آن دود بالا رونده خیره ماند و نفهمید که چوپانها برای چه در آن ساعت اجاق روشن کردند. صدای صحبت همسفرانش شنیده میشد. نوعی شادمانی و سرخوشی در صدایشان بود. مرچه ها هم با گرم شدن زمین تلاش بی‌وقفه خود را شروع کرده بودند. از بنفشه در فاصله گرفتند. شب گذشته همین راه را سوار بر ترک اسب مله آمده بود زیر باران شب بی شان خوابید از بس که خسته و سرما زده بود حال در گرمای مطبوع خورشید و خاک نرم و باران خورده و سبزه های تازه رسته ی اطراف جاده احساس گرسنگی می کرد نه شب و نه صبح چیزی نخورده بود چند قارچ بزرگ با کلاهک های سفیدشان کنار جاده رویده بودند به کندی گام برداشت و با دقت نگاهشان کرد تعم قار زیر زبانش پخ شد و آب دهانش را قورد داد. در همین وقت صدای پایی از پشت سرشنید. کسی میدوید و نزدیک میشد. نه سر برگردان و نه ایستاد. به راهش ادامه داد. دست خوش تشویش بود از آن صدا میترسید. کسی نفس نفس زنان گفت؟ آنا گفت گرسن ای؟ نتوانست برود. ایستاد. با نگاه فرو افتاده نان پیچه را به اسماعیل داد و برگشت و به طرف زنها رفت. نان خوش رنگ بود گندمگون با تهرنگی از برشتگی اشتها برانگیز اما دیگر گرسنه نبود نان پیچه همچنان در دستش ماند به جلو نگاه کرد راه خاکی از میان مزارع سبز پیچ می‌خورد و می لغزید و تا دور دستها پیش می‌رفت در شیب سبز کوهی گله‌ای گوسفند مانند دانه‌های سفید تسبیح پشت سر هم در حال حرکت بودند صدای پارس سکهای گله و زنگوله بزها و هیاهوی چوپان به گوش می رسید. آسمان مسیر پرواز کبوترهای وحشی و پرسوها و چکاوکها بود. گاهی پرواز مغرورانه اقابی صداها را خاموش می کرد. مدتی بعد دریاچه دیده شد. سیمگون و با پولکهای مواج رنگین کمانی. نیزار رازالود بود. لابلای نیها چهرهی مسترب با چشمانی نگران نگاهش می کرد و می گذشت. پیراهن هنایی بلند با گلهایی به رنگ آفتابگردان مثل یک خیال دور دست و نایاب میرفت و محو می شدد. بی اختیار برگشت و به عقب نگاه کرد. کنار مادرش بود بلند و برازنده خیالش راحت شد. پشت سرش میآد شروع به خوردن نام پیچه کرد. نفهمید چه میخورد اما مزه آن لذت بخش و بود. به گامهایش شتاب بخشید. از دریاچه با تمام شگفتی و زیباییش خوف داشت. دلیل آن را نمیدانست، از آنجا دور شد. وقتی به خود آمد که دوباره صدای پایی را شنید. کسی از پشت سر می آمد و به او نزدیک می شد. دیگر بر نگشت نگاه کند. صدای پارا می شناخت. اشتباه می از راه آبگرم گذشتی. باید می پیچید سمت راست. ناگزیر برگشت و نگاه کرد. چند قدم عقبتر. باری که راهی از جاده اصلی جدا میشد و می پیچید سمت راست منظورش همان راه بود سونا با انگشت اشارش آن را نشان داد گفت خیلی خوب از اون میرم. برگشت سونا رفت او هم باری که راه را در پیش گرفت این یکی هم از میان مزاره می گذشت. با این تفاوت که جای رد چرخ ماشین و روی آن دیده نمی شد. مال رو بود زمین تپ کرده بود و بخار رقیقی از آن برمی‌خاست. باد از روبروی میوزید و عطر بومادران و نعنای کوهی را با خود می‌آورد. کمی جلوترد پای تپه ای تک درختی روییده بود که هنوز تک و توک قنچه روی شاخه‌هایش دیده می‌شد. نزدیک که شد، تعجب کرد. به جای یک تنه، چندین تنه به هم پیچیده و قد کشیده بودند. اطراف آن سنگلاخ بود و شاخه‌هایش کوتاه و متراکم، نشان اوجاغ چوپان‌ها و روی تنه درخت به صورت لکه های سیاه مانده بود تماشااییتر از همه تعداد زیاد تکه پارچه های رنگی بود که روی شاخه ها دیده میشد. آنها به دقت گره خورده و مانند بری از شاخه ها آویخته بودند در همین موقع زنها هم رسیدند آنا نفس نفس زنان گفت یه خورده تو سایه درخت استراحت کنیم بعد راه بیفتیم به اسمایل چشم دوخت گویا با نگاهش می‌خواست بپرسد حالت چطوره؟ گرسنه که نیستی؟ اسمایل هم با نگاه جوابش را داد و بعد دوباره به تماشای درخت برداخت. با دوباران رنگ پارچه ها را پرانده بود و گره برخی هم شل شده بود. زنها کنار آنان نشسته بودند و همچنان می گفتند و میشنیدند و خستگی در می کردند. تنها سونا سرپا بود و با کنج کاوی درخت مراد را تماشا می کرد. زنها شوخیشان گل کرده بود. بیاییم بازم نصر کنیم و گره بزنیم. نه اینکه از نظرهای قبلی خیلی مراد گرفتیم، این بار به جایی یه گره چند تا بزنیم. هزار تا شلیط هم که ببندیم هزار گره هم بزنیم بخت ما حالا حالا باز شدنی نیست. حیف از اون همه پارچه خواهر والا اسمایل به پشت درخت پیچیده بود. به غیر از تکه پارچه ها درخت پر از فضله بود. گویا همه ی پرندگان دشت برای استراحت به آن تک درخت پناه می آوردند و شاخ و برگ آن را از فضله خود بینیب نمیگذاشتند. به گره ها و تاب ها و پیچیدگی های شاخه چشم دوخته بود که در آن حال نگاهش در آن سوی شاخه ها به دو چشم آشنا افتاد که به او دوخته شده بود. داشت پارچه گره می زد. لحظاتی دیگر نه درختی در آن دشت بود و نه آن همه شاخه های تنیده در هم با گره های متمادی و نه حتی صاحب آن دو چشم. دشتی بود پر از مزاره سبز و گل های بابونه و پروانه های رنگی. بس دیر می شه. اول خودش بلند شد و به راه افتاد بقیه هم راه افتادند اسماعیل از همان پشت درخت پیچید و خودش را به راه رساند جلو افتاد آنقدر که تنها صدایشان را بشنود دلش لرزیده بود همین نگرانش می کرد سرنوشت نامعلوم و فردای مبهمی داشت مسافری بود که هرچه زودتر باید آنجا را ترک میکرد و به راهش ادامه میداد و به کسی و چیزی و جایی دل نمیبست. کم کم به سربالایی رسید ناگوزیر آهسته رفت بالا دست همون جده ای آسفالته بود که وقتی ماشین ها از آنجا عبور می کردند، تابش خورشید روی شیشه هایشان منعکس می و صدایشان به زحمت به گوش می رسید. از جاده گذشتند و در دشت صاف و یک دست به راهشان ادامه دادند جاده باریک و مالرو که تابحال حال آرام و بی پیچ و تاب و فراز و فرودی زیر پایشان پهم بود ناگهان درون گودالی کشیده شده شد و از ماند. اسماعیل با تعجب خود را به نقطه‌ای که جاده بلعیده شده بود رساند. گیر شد. آنچرا که می‌دید برایش باورناپذیر بود. با دهان نیمه باز مشغول تماشا شد. زیر پایش دره وسیع و عمیقی گسترده شده بود و جاده مثل تناب باریکی پیچ می‌خورد و پایین می‌لغزید. رودی بزرگ در عمق در جریان داشت که پل چوبی درازی دو سوی ساحل آن را به هم وصل می‌کرد. جاده از آنجا دوباره بالا می‌رفت. صدای قررش رود را باد به گوش می رسند. آن سوی در کوهستان بود که با شیب ملایم شروع می و دورده است به قله‌های پربرف و مهالود ختم می خاک و سنگ آن سوی تپه به سرخی میزد و برخی جاها از شدت سرخی انگار در آسانه شعله شدن بود. بر فرازان در ره شیفت ایستاده بود. آبگملای اون سخراهای سرخه آدمو می سزونه. احساس کرد گرمای آبهای میان سخراها درون رکایش جاری شد و سراپایش را داغ کرد. اون طرف پر از آبای گرمه، بزرگ و کوچیک میجوشه و بالا میاد. نتوانست حرفی بزند. صدای کوبش قلبش را میشنید. زمین هم زیر پای آدم میلرزه. سرش را پایین انداخت و به زمین نگاه کرد. زانوهایش میلرزید. آهسته گفت، آتش فشان. با همون زانوهای لرزان سرازیر شد، سونا ماند، جاده پیچ وتاب میخورد و به عمق دره میرفت آنجا که سیلاب میقرید. گروه زنها آشنای راه بودند، دستکم ماهی یک بار این مسیر را می‌آمدند و میرفتند. آموخته فراز و فرود پیشیچش های آن شده بودند. مدتی بعد به چمنزار ی رود رسیدند. نفس راحتی کشیدند و تا آستانه پل چوبی به راهشان ادامه دادند. پل با تخته و تناب و چند پایه چوبی و سنگی روی بستر رود دراز افتاده بود اولین نفر اسماعیل بود چند قدم که پیش رفت پل لرزید مثل تاب بازیش گرفت و تعادل او را بر هم زد رود میقرید و تهدید میکرد وای استا بدتر میشه باید بری جلو از وسط پل پیش رفت بدون توقف با این حال دستهایش را به دو سو باز کرده بود و مثل زمانی که روی ریل راهن راه میرفت و نمیخواست پایش به زمین بخورد میرفت. رود از بالا دست می آمد. از میان تنگه یاری که دو کو سیلاب از شکاف سراسیمه بیرون میجهید و به سوی پل جاری پهنای پهنایان از بستر رود وسیعتر شده بود گاه خط ساحل بسیار گسترده می شد. از لرزش های تازه پل فهمید کسی از پشت میآید برگشت و نگاه کرد سنا بود، راحت راه میرفت و آسود رود و همواجش را تماشا میکرد. او هم چند بار از میان شکاف دو تخته به پایین چشم دوخت رود با شتاب میلغزید و موجها سر به سنگها و ستونهای پل می و خشمگین بالا می جهیدند. گویا همه چیز را میخواستند پایین بکشند و ببلند و با خود ببرند سعی کرد نگاهش از میان تخت بندهای نیم بند پل به انواج خروشان نیفتد وقتی پایش را در آن سوی پل به زمین گذاشت، نفس راحتی کشید. برگشت به پشت سر نگاه کرد. سونا مانده بود و حالا داشت به آنا کمک می کرد تا از روی پل بگذرد. دیگران هم راحت می آمدند. گاهی می استادند و عرض و طول رود را به هم نشان می دادند و حرف می زدند و می خندیدند. گویا عبور از روی آن سیلاب برایشان تفریح و تماشا بود. این بار شیب باریک راه رو به بالا بود. گاه با پیچهای ملایم و آرام و گاه توند از لابلای های خاک و صخره‌های سرخ خود را بالا می‌کشید. کم کم بوی گوگرد که شبیه به بوی تخم مرغ و ماهی بود در فضا پیچید. بعد هایی که به صورت اتاقک‌های گلی با خاک سرخ ساخته شده بودند دیده شدند. آنها بیشتر شبیه به آلاچیق‌ها بودند با دیوارهای سنگی گلندود و سقف پوشیده شده با ساقه و برگ خشک درختان اطراف. چند اسب علااق به سنگ بسته شده بودند. تعدادی زن و کودک در پناه دیوارها یا صخره نشسته بودند و از اجاق که درست کرده بودند دود به هوا بلند میشد. چند سگ در اطراف پرسه می زدند. اسماعیل تا همراهانش برسند ظاهرا اینجا پایان راه بود و مقصد آنها. آنا جلو می آمد. وقتی به اسماعیل رسید با رضایت خاطر گفت: خوب رسیدیم. هنوز نوبت مرداست. معنی حرف او را نفهمید. آنا به او اشاره کرد. لباسایی تمیزتو بگیر و برو تو. آین و در چنان جاهایی را نمیدانست. بلا تکلیف مانده بود. آن همه زن و بچه و قهوچی هایی که در حال رفته آمد بودند و بوی گوگرد که در محوت پیچیده بود نگرانش میکرد دوست داشت برود روی آن پل چوبی بیست و از میان تختها به سیلاب خیره شود. ولی به جایی که می‌داند باید چکند نرود خیلی وقتی که آب به بدنت نخورده، خجالت نکش. تو هم مثل بقیه مردو برو اون تو و خودتو خوب بشور. بخچه را روی تخت سنگی گذاشت گرههای آن را باز کرد و چند قلم لباس زیر مردانه و لنگ و لیف و به او داد و گفت ما هم پشت این سنگ را اوجاق درست میکنم و چای میذاریم تا تو بیایی